چرا باید تاریخ قوم یهود رو بخونیم؟ بسیاری از مردم احساس می‌کنند مطالعه تاریخ زیاد مهم نیست مخصوصا در مورد تاریخ قوم یهود اما در درس امروز معلم ما به ما خواهد گفت که چرا برای من و شما اهمیت داره که زمینه تاریخی قوم خدا رو بدونیم و اینکه چطور خدا اونها رو به کار گرفت تا اینکه مسیح های منجی بتونه به جهان وارد بشه حالا معلم ما درس امروز رو با شما در میون میذاره ما امروز مطالعه پنج کتاب اول کتاب مقدس رو که به کتابهای شریعت معروفند به پایان رسوندیم این کتابها به خاطر اینکه حاوی شریعتیه که خدا به ما داده کتاب شریعت نامیده شدند اونها شامل شریعت خدا هستند که گاهی به اونها شریعت موسی هم گفته میشه عقیده بر اینه که این کتاب ها تنها کتاب های شریعت نیستند بلکه کتاب های تاریخ هم هستن. داستان تاریخی در بعضی از این پنج کتاب کتاب مقدس وجود داره. دوازده کتاب بعدی عهد قدیم همه تاریخی هستند. پس عقیده بر این هست که ما میتونیم بگیم 17 کتاب اول عهد قدیم کتاب های تاریخی هستند. وقتی ما این واقعیت را از آن می کنیم که 17 کتاب اول عهد قدیم کتاب تاریخی هستند، با این سؤال مواجه می‌شیم: چرا ما باید این همه تاریخ بخونیم؟ چرا ما باید این همه تاریخ قوم یهود رو بخونیم؟ اصلاً چرا ما باید تاریخ بخونیم؟ مخصوصاً چرا باید تاریخ یک قوم کوچک رو بخونیم، تاریخ قوم اسرائیل رو؟ چرا 17 کتاب الهام شده از طرف خداوند؟ کتاب تاریخ قوم یهود هست، جوابهای متعددی برای این سوالات هست. یکی از جوابهایی که ما غالباً می دیم اینه، تمامی این چیزها برای اونها به عنوان نمونه پیش آمد و اونها برای راهنمایی ما نوشته شدن که تا آخر زمان استفاده خواهد شد. همونطور که پولس رسول در اول قرنتیان باب ده آیه یازده گفته و خیلی ها به اون آیه ایمان دارن. اگرچه این آیه در عهد جدید اومده اما اون آیه کلیدی برای عهد قدیم هست مخصوصا برای راهنمایی های تاریخی عهد قدیم اونها تاریخی هستند نه رسوم تاریخی افسانه‌ای این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سر میبریم که قایت همه آثار تحقق یافته است علاوه اونها حاوی هایی هستند حاوی درس‌های کاربردی این نو ها گاهی به عنوان سرمشق ها و عبرت ها کاربرد دارند تا ما تاریخ قوم یهود رو بخونیم و سرمشق بگیریم وقتی قوم یهود از خدا اطاعت کردند وقتی اونها نسایه موسی را پذیرفتند خدا اونها را برکت داد و اونها سرمشق ما شدند وقتی اونها از کلام خدا اطاعت نکردند اونها زیر لعنت خدا زندگی کردند و زندگی اونها به سرعت تبدیل شد به عبرتی برای من و شما که بر مبنای اون زندگی اونها به پایان رسید این یکی از دلایلی که ما تاریخ قوم یهود رو مطالعه میکنیم هر چیزی که برای اونها پیش آمد برای تقدیس ما بود که به عنوان سرمشقی برای ما باشند که از اونها پیروی کنیم و یا عبرتی باشند که از اونها اجتناب کنیم دلیل دیگری که چرا کتاب مقدس این همه فضا برای تاریخ قوم یهود اختصاص داده اینه که اونها قوم برگزیده خدا بودند که با آمدن مسیح از طریق اونها قرار بود تمامی زمین برکت یابد. وقتی که خدا تصمیم گرفت انسان بشه و به این دنیا بیاد، او یک مرد سفید پوست، سیاه سرخ پوست،, پوست یا زرد پوست نشد. او قوم خاصی رو خلق کرد به این منظور که به واسطه اون به این دنیا بیاد. وقتی خدا به ابراهیم معموریت داد که پدر این قوم بشه، او گفت از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم. و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. چون مسیح به واسطه این قوم خاص می آمد. پس تاریخ قوم یهودی تاریخی بسیار خاص هست. همینطور کلام خدا به واسطه این قوم خاص به ما رسید. در رسالات عهد جدید این رو به ما یادآوری کرده. اونها قوم بسیار خاصی بودند چون نه تنها ما مسیح رو به واسطه اونها داریم که نجات و بازخرید ما از طریق مسیح آمد، بلکه همینطور به واسطه این قوم برگزیده ما الهام خدا یا همون کلام خدا رو دریافت کردیم و این تاریخ اونها رو بسیار بسیار خاص میکنه باز هم دلیل دیگری هست که چرا تاریخ قوم یهود مهم هست با با آخر هنوز نوشته نشده پس بیایید صبور باشیم یکی از بزرگترین های موسی که ما در بررسی کتاب تصنیع مطالعه نکردیم در اواخر کتاب هست. اون که اون نبوت حیرت انگیزی در رابطه با اسرائیل میکنه موسا بردگی اسرائیل رو پیش بینی میکنه پراکندگی اسرائیل رو و بعد بازگشت اسرائیل رو به سرزمین خودشون موسی گفت که قوم خدا به لحاظ جغرافیایی به زمین های مقدس خودشون باز خواهند گشت و به لحاظ روحانی به سوی خدای قدوسشان باز خواهند گشت تماشای بازگشت قوم اسرائیل به سرزمین مقدس هیجان انگیز بود اسرائیل در 1948 تبدیل به یک ملت شد حزقیال این بازگشت رو پیشگویی کرده بود ارمیا، اشعیا و موسا هم همینطور اگر به چیزی که نبوت کتاب مقدسی میگی ملاقمندید اگر به چیزی که بهش آخرت شناسی میگی ملاقمندید که متعالعه اتفاقات آینده هست اگر نمیدونید که در دنیا چه اتفاقاتی خواهد افتاد نمیدونید داستان بشریت چگونه به پایان خواهد رسید، خواهید دید که کتاب مقدس مطالب زیادی در این باره داره. خدا نقشه‌ای داره و تاریخ بشریت رو بر اساس اون نقشه به پایان خواهد برد. اسرائیل درست در مرکز نقشه خدا قرار داره. اگر علاقمند هستید که نقشه خدا برای پایان تاریخ بشر رو بدونید، بر اسرائیل و آن سرزمین مقدس چشم بدوزید چون که تمام وقایع آخر در اونجا اتفاق خواهد افتاد. و تمام این وقایع در اطراف قوم یهود پیش خواهد آمد. در یکی از بزرگترین بابهای نبوتی، رومیان باب 9 تا 11 پولس می‌نویسه که روزی تمام اسرائیل نجات خواهد یافت. اسرائیل به خدا باز خواهد گشت و خدا به سوی اونها باز خواهد گشت. پولس رسول این چیز حیرت رو به ما میگه که برای تنبیه اسرائیل، به خاطر اینکه مسیح را رد کردند، خدا اجازه داد که غیر نجات یابند. حولوس میگه که وقتی مردم غیر یهودی به اندازه کافی نجات پیدا کردند که برای تنبیه قوم اسرائیل به خاطر رد کردن مسیح کافی باشه اون موقع خدا به سوی اسرائیل باز خواهد گشت و همه اسرائیل نجات پیدا خواهند کرد زکریا نبی در زکریا باب هشت به ما میگه که روزی قوم یهود دوباره انبیاء بزرگی خواهند شد و ها به دامن شخص یهودی چنگ زده متمسک خواهند شد و خواهند گفت همراه شما میاییم زیرا شنیده ایم که خدا با شماست اگر نبوت کتاب مقدسی را مطالعه کنید خواهید فهمید که اسرائیل کلید نبوت است ما بازگشت جغرافیایی قوم اسرائیل به سرزمینشون رو دیده ایم اما بازگشت روحانی اسرائیل رو به سوی خدایشان ندیده ایم نشانه های ناخرسندی جالبی در این مسیر دیده میشه. شه وقای جالب زیادی هستند مثل کنیسه های در انتظار مسیح ما می بینیم که قوم برگزیده خدا تولد تازه می یابن. تبدیل می و به شکل کنیسه های در انتظار مسیح ظاهر می شن. هر نشانه روحانی به علاوه بازگشت جغرافیایی در مورد قوم اسرائیل و قایهی هستند هستن. همینطور که پایان تاریخ رو بررسی می کنیم می بینیم که بر اساس نبوتهای کتاب مقدسی بازگشت روحانی و جغرافیایی قوم اسرائیل عامل بزرگی در به پایان رسیدن جهان هست. ما تاریخ قوم یهود رو میخونیم چون هنوز خدا کارش رو با قوم اسرائیل به پایان نرسونده و وقتی کار خدا با قوم اسرائیل به پایان برسه همزمان کارش با تمام دنیا هم به پایان خواهد رسید. معذالک دلیل دیگه ای که چرا ما تاریخ میخونیم؟ وقتی شروع میکنیم به مطالعه کتاب های تاریخی احت قدیم میتونه این باشه. فرض کنید که فردا در بیمارستان بیدار بشید و به شما بگند که، در مسیر خانه تصادف کرده اید و به خاطر اون تصادف دچار فراموشی مطلق شده اید فرض کنیم که شما هیچ کلیدی ندارید که بتونید بفهمید کی هستید و اهل کجا هستید نمیدونید این زنی که مرتباً میاد و به نظر میاد که با شما انقدر صمیمیه که شما رو به دستشویی میبره این بچه هایی که شما رو پدر یا مادر خطاب میکنند نمیشناسید هیچ اطلاعی ندارید که اونها کی هستند مطلقاً نمیدونید در چه مکان و چه زمانی هستید چون که تماما دچار فراموشی شدید این میتونه برای همه پیش بیاد در چنین زمانهایی مهمترین چیز توی دنیا برای شما چی میتونه باشه میتونه چیزی باشه که بهش پیشینه اجتماعی میگیم اگر شما دیدید که در فراموشی هستید دائما به این فکر هستید که بفهمید پیشینه اجتماعی شخصی شما چیه دقیقاً نمیتونید توی زندگی تصمیم بگیرید کجا برید و چیکار کنید تا وقتی که ندونید کی هستید و کجا بودید این مفهوم واقعی تاریخ است و به این دلیله که ما تاریخ می اگر شما بخواید بفهمید که خانواده بشری از کجا اومده و کجا باید باشه و کجا باید بره، برای اینکه دیدگاهی از این چیزها داشته باشید، نیاز دارید بدونید که خانواده بشری از کجا اومده. وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنید اگر بخواید قوم خدا رو درک کنید که شما هم به اون تعلق دارید، اگر شما عضوی از قوم خدا هستید، لازمه که چیزهایی رو در مورد قوم خدا بدونید قوم خدا کجا باید باشند؟ کجا باید برند؟ اهداف و ارزش و آرزوهای اونها چی باید باشه؟ برای اینکه بفهمید قوم خدا کجا باید باشند و کجا باید برند؟ باید دیدگاهی از این داشته باشید که اونها کجا بودهاند نه تنها قوم یهودی خدا بلکه تمام قوم خدا به خاطر تمامی اون دلایل ما می مطالعه کتاب تاریخی عهد قدیم را شروع کنیم ما تاریخ قوم یهود رو از کتاب تاریخی کتاب مقدس مطالعه خواهیم کرد. یادتونه که تاریخ قوم یهود از خود خدا شروع شد. بنا روایت کتاب پیدایش که کتاب بزرگ منابع هست، خدا سرچشمه این قوم و تمامی مردم هست. به گفته پیدایش، توسط مردی به نام آدم که پدر هست و در رأس کل نجاد بشری هست، خانواده بشری پا به عرصه هستی گذاشت. ما در مورد این قوم خاص برگزیده در کتاب پیدایش می بینیم این قوم خاص برگزیده خدا توسط پاتریارک ها پا به عرصه هستی نهادند توسط سه مرد به نامهای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. سابقه اونها در کتاب پیدایش برای ما گزاره شده. وقتی کتاب پیدایش تموم میشه یادتونه که این پاتریارک ها دوازده تایفه شده بودند یا دوازده خانواده و در مصر بودند تا از قحطی نجات پیدا کنند. کتاب پیدایش با این 12 فامیل یا 12 طایفه در زمین مصر خاتمه پیدا میکنه وقتی 400 سال بعد کتاب خروج باز میشه این 12 طایفه تکثیر شده بودند مثلا در ایالات متحده در طی 200 سال ملت از اجتماعات کوچک به جمعیتی بالای 300 میلیون نفر افصاح یافته در طی 400 سال در مصر این 12 طایفه به چیزی بین 2 تا 3 میلیون نفر افصاح یافته بودند افزایش چشمگیری بود اما اونها فقط به انبوه مردم افزایش یافته بودند یکی از اولین چیزهایی که به نظر خدا اونها نیاز داشتند وقتی که اونها رو گسترش میده یک رهبر بود پس موسی فراخنده شد و مأمور شد که رهبر این گروه کثیر باشه در کتابهای شریعت دیدیم که موسی نمیتونست بدون بعضی قوانین این قوم رو رهبری کنه در کوه سینا موسی از خدا خواست که به او قوانینی بده که به وسیله اون بر این مردم حکومت کنه به اعتقاد من موسا حداقل سه بار به کوه سینا سعود کرد و چهل شبان روز رو در روزه و دعا بر بالای کوه سپری کرد در پاسخ به دعاهای او خدا به موسا شریعت خدا یا پنج کتاب اول کتاب مقدس رو داد این قوانین تبدیل به راهنمایی شدند که موسا توسط اونها قوم رو رهبری کرد همینطور که تاریخ اونها گسترش پیدا میکرد اونها از یک جمعیت بی یا گروه کسید به یک قوم تبدیل شدند. حالا اونها رهبری داشتند و رهنمودهایی و احکامی داشتند. اما مشکل بزرگی داشتند و اون مشکل این بود که اونها در جایگاه درستی قرار نداشتند. اونها در مصر بودند. خدا برای اونها جایی در نظر داشت و اون مصر نبود. کنان بود. پس اونها باید رهایی بزرگ از مصر رو تجربه می کردند. و اونها اون رهایی بزرگ از مصر رو به رهبری موسی تجربه کردند این داستان رو در کتاب خروج می‌خونیم در کتاب اعداد دیدیم که اونها وقتی از مصر خارج شدند مستقیما به کنعان نرفتند و به مدت چهل سال در بیابان دور خودشان می‌چرخیدند این داستان ضروری و تاریخی در کتاب اعداد هست. بعد در کتاب اعداد پیغام ترسناک مرگ یک نسل کامل از این قوم رو می‌بینیم کتاب اعداد یکی از ترسناکترین کتاب ها در کتاب مقدس هست. کتاب یوشه اساس این نکته و بر مبنای اطاعت از نصایح موسا در کتاب تصنیه تنظیم شده. قوم یهودی تحت رهبری یوشا وارد سرزمین کنان میشن، این پیغام ضروری کتاب یوشه هست. کتاب یوشا حقیقتی حیاتی رو به ما یاد میده، اون کتاب هیجانانگیزه، همانطور که کتاب اعداد پیغامی در مورد بی‌ایمانی بود که، به خاطر اون قوم وارد کنعان نشدند کتاب یوشه کتابی است در مورد ایمان چون اونها ایمان داشتند وارد سرزمین کنعان شدند اونجا رو تصرف کردند و مالک سرزمین وعده شدند کتاب داوران یک کتاب تاریخی و پیوندی بین کتاب یوشه و سموئیل کتاب داوران دوره‌ای حدود 400 سال رو دربر بر میگیره که البته زمان خیلی زیادی بوده فقط بین پیدایش و خروج شما 400 سال فاصله رو میبینید و بعد کتاب داوران 400 سال دیگر تاریخ رو در بر میگیره. در خلال 400 سال وقتی که داوران حکومت میکردن، بنی اسرائیل از یک مرحله تاریخی عبور کردند. اونها هفت بار مرتکب گناه ارتداد شدند. به این معنی که از جایگاهی که نزد خدا داشتند خارج شدند. در پایان تسنیه موسی به اونها نصیحت کرد که جایگاهی برگزینند و خدا رو در رأس قرار بدن. یوشه هم در پایان کتاب یوشا همین کار را کرده. مردم تصمیمی اتخاذ کردند و گفتند ما خدا رو در اولویت قرار خواهیم داد و خدا را خدمت خواهیم کرد. اما در کتاب داوران گفته شده که هفت بار در طی چهارصد سال اونها از موقعیتشون دور شدند. هر بار که این کار رو کردند خدا دشمنی رو برانگیخت که بر اونها قلبه کرد و اونها رو به بردگی برد. بعد از پیروزی و آزادی از بردگی در دورههای مختلف زمان اونها یک جنبش داشتند یک جنبش روحانی. وقتی که برای آزادیشون نزد خدا ناله کردند، همونطور که در آزادی از مصر تجربه کرده بودند خدا داوری برانگیخت. داوران منجی بودند. خدا داوری برانگیخت که واقعا یک ناجی و آزاد کننده بود. درست مثل موسا که اونها را از مصر بیرون آورد، این داور اونها را در دوره های مختلف بعد از آزادی هدایت کرد. معمولا در دوران زندگی اون داور اونها در صلح بودند اما وقتی بعد اون داور مرد اونها دوباره در همون چرخه گرفتار شدند در طی دوره داوران اونها سه جنگ داخلی داشتند که سومی جدیترین اونها بود اون سلسله وقایع تاریخی که در کتاب داوران ادامه پیدا میکنه بعد از داوران کتاب تاریخ سموئیل هست وقتی که به زمان سموئیل میرسید شما عامل رهبری رو میبینید خدا همیشه میخواست که شاه اونها باشه. ارادهی قالب خدا برای حکومت اونها چیزی بوده که ما همیشه بهش خدا سالاری میگیم. خدا بر مردم حکومت میکنه برای اینکه این کارو بکنه تنها چیزی که خدا واقعا نیاز داشت، یک نبی کاهن مثل موسی بود که به بالای کوه میرفت و برای مردم شفاعت می کرد. بعد از کوه پایین می اومد و کلام خدا رو با مردم در میون میذاشت. خدا رهبری نیاز داشت که، وقتی به بالای کوه میرفت یک کاهن باشه و برای مردم شفاعت کنه و وقتی از کوه پایین میومد یک نبی باشه و سخنان خدا رو به اونها بگه این تنها چیزی بود که خدا نیاز داشت تا بر مردم حکومت کنه سموئیل چنین رهبری بود یک کاهن نبی اما در زمان سموئیل بود که مردم نزد او که رهبرشون بود به او گفتند ما این سازماندهی رو دوست نداریم که خدا شاه ما باشه این تشکیلات خداسالاری و نبی و کاهن رو نمیخوام. ما هم مثل اقوام دیگه میخوایم شاه داشته باشیم. به شدت اندوهگین شد. آیات زیادی هست که تاکید میکنه خدا هرگز نمیخواست این قوم پادشاه داشته باشن. اما همینطور که در کتاب خروج دیدیم وقتی اونها گوشت خواستن خدا اونقدر به اونها گوشت داد که از دماغشون بیرون اومد تا جایی که دل اونها رو زد. و اینجا وقتی اونها گفتند که شاه میخوان خدا به سموئیل گفت آواز قوم خود را در هرچه که به تو گفتند بشنو. زیرا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. پس الان آواز ایشان را بشنو و ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. در عهد قدیم شما شش کتاب دارید که عبارتند از اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاهان اول و دوم تواریخ که در ابتدا همه به عنوان پادشاهان طبقه بندی شده بودند. عملا به عنوان نوشته های پادشاهان طبقه بندی شده بودند چون اونها در مورد پادشاهان با ما صحبت می کنند. نام اولین پادشاه شاول بود. او از خدا اطاعت نمی کرد. در معذ کردن اولین شاه حیجان داشت. آیا معذ کردن یک شاه مزهک به نظر نمیاد؟ اما بعد از معذ کردن اولین شاه سمویل فرمان داد و به او اقتدار بخشید بعد فهمید که شاول از خدا اطاعت نمیکنه. پس سموئیل از کنار گذاشتن اولین شاه اسرائیل شادی می کرد. سموئیل آشکارا شاول را ازل کرد سموئیل گفت این وضعیت درستی نیست خدا نمیتونه به وسیله تو کار کنه اگر تو نخواهی که گفته های او را به جا بیاری از خدا پادشاهی را از تو خواهد گرفت و به مردی خواهد داد که تمام دلش با خداست و به دنبال انجام اراده خداست خدا چنین مردی رو پیدا کرده. وقتی این شاه به قدرت رسید، شما هنوز این نبی کاهن رو در صحنه دارید. نبی همیشه به عنوان بخش کوچکی در پشت صحنه بود. اگر شاه از خدا اطاعت نمی کرد، منتظر نبی میشد که به صحنه بیاد و اون شاه رو هدایت کنه. پادشاهان همیشه باید با اون نبی هماهنگ شدن چون اراده نافذ خدا این بود که از طریق نبی کاهن هدایت بکنه. وقتی که پادشاه حطاعت نمی نبی کاهن می آمد و سخنگوی خدا می شد. دومین پادشاه اسرائیل داوود بود. داوود مردی بود با قلب خداجو که اشتیاقش انجام تمام اراده خدا بود. پس خدا از طریق داوود کار کرد. داوود ناتان رو به عنوان نبی کاهن خود داشت. وقتی داوود گناه کرد، نبی شجا ناتان به صحنه آمد و با انگشتش به داوود اشاره کرد و گفت آن مرد تو هستی، تو گناه کردی، ناتان وضعیت رو برای داوود شرح داد چون که داود نبی خودش رو داشت. اما داوود پادشاه خوبی بود چون قلب داوود این بود که تمام اراده خدا رو به جا بیاره. بعد پس از داوود پسرش سلیمان شاه شد و در ابتدا سلیمان به نظر می رسید پادشاهی بود که خدا به وسیله او کار خواهد کرد. او شروع بسیار زیبایی داشت. او دعای زیبایی کرد و خدا به دعای زیبای او پاسخ داد اما بعد همینطور که در کتاب تصنیه به ما گفته شده سلیمان از خداوند برگشت و مرتکب ارتداد شد خدا نمیتونست از طریق سلیمان کار کنه عواقبی که به دنبال سلطنت سلیمان می آمدند مطلقا وحشتناک بودند عواقی که قوم اسرائیل متحمل شدند عواقی که به نام بردگی پادشاهی داوود نامیده شدند در نتیجه گناه داوود پدید نیامد داوود به گناهش اعتراف کرد و توبه کرد. روی هم رفته داوود چهل سال سلطنت کرد. داوود بعد از اینکه گناه کرد 24 سال حکومت کرد. خدا داوود رو به خاطر اون گناه دور نینداخت چون او توبه کرد و به گناه خودش اعتراف کرد. این گناه سلیمان بود که مصیبت بر پادشاهی وارد آورد. در نتیجه گناه سلیمان 700 زن او و 300 سیغه او پادشاهی به دو قسمت تقسیم شد. یک پادشاهی در شمال بود که اسرائیل نامیده میشد. ده طایفه در پادشاهی شمال یا اسرائیل بودن. در جنوب دو تایفه کوچک بودن. بنیامین و یهودا. پادشاهی جنوب یهودا خانده میشد. چون پادشاهی جنوب یهودا خانده میشد، مردمان پادشاهی جنوب با اشاره به نام یهودا یهودی خانده میشدند. به خاطر نحوه حکومت سلیمان دو پادشاهی به وجود آمدند. و هر دو پادشاهی به اسارت گرفته شدند پادشاهی شمال توسط آشوریها به اسارت گرفته شد بدترین دشمنی که قوم یهود تا اون موقع داشتند که آشوریها ده طایفه اسرائیل رو به اسارت بردند بعد از اون دیگر نامی از آنها باقی نماند اونها های از دست رفته اسرائیل خوانده شدند اونها مطلقا از روی زمین محو شدند فقط پادشاهی کوچک جنوب به نام یهودا یعنی طایفه های بنیامین و یهودا باقی ماندند در این کتاب تاریخی پادشاهان ما میبینیم که نبوخذ نصر هم از بابل پادشاهی جنوب رو به اسارت می بره وقتی که در این سلسله وقایع تاریخی پیش می دیم این چیزی که در انتها می بینیم. اونها سرزمینی داشتند که کسی در اون ساکن نبود زمین خالی بود پادشاهی شمال رفته بود پادشاهی جنوب رفته بود فقط سرزمینی خالی باقی مانده بود این چیزی که در نتیجه گناه ارتداد سلیمان در این پادشاهی میبینید. وقتی که بابلی ها پادشاهی جنوب رو به بابل بردند ما وقایه اسارت بابلیها ها رو دنبال می‌کنیم ما دوباره نامی از پادشاهی شمال نمیشنویم، اما سلسله وقایه تاریخی با پادشاهی جنوب ادامه پیدا میکنه. پادشاهی جنوب در بابل به مدت 70 سال در اسارت بودند در پایان هفتاد سال امپراتور بزرگ پارس بابل رو فتح کرد بعد از هفتاد سال اونها در بابل نبودند اونها در پارس بخشی از امپراتوری پارسیان بودند وقتی کورش کبیر بابل رو فتح کرد خدا او را برانگیخت که فرمانی صادر کرد که طبق اون هر یهودی که در پارس بود و میخواست به سرزمین خود بازگردد و معبد و سرزمینش را از نو بنا کند آزاد است که برود این یکی از بزرگترین معجزات تاریخ قوم یهود است بازگشت از اسارت بابل پیغام نحمیا، را و هجی اینه که چندین بازگشت بوده، نه فقط یکی. تحت رهبری بزرگ کسانی که مایل بودند، سرزمین پارس رو ترک کنن و به اسرائیل برگردن، بازگشتن. این بازگشت از بابلی ها بود. این زمانی بود که نحمیا، ازرا و بعضی از انبیایی که معاصر با اونها بودن، تبدیل به رهبرانی بزرگ شدن. همه اونها تصمیم نگرفتن که به اسرائیل برگردند. بعضی از اونها نمیخواستند که برگردند اونها تبدیل به فروشنده و تاجر شده بودند و به دلایل بسیار نمیخواستند که برگردند اکثریت اونها در مرکز پارس باقی موندند این شمای جالب در مورد این دوره از تاریخ قوم یهوده و شما نوع خاصی از رهبری رو میبینید ترجیح خدا این بود که اراده نافذ او از طریق کاهنین نبی اعمال بشه وقتی این مردم شاه خواستند خدا گفت بسیار خوب به شما شاه خواهم داد اما این کارایی نخواهد داشت چون اکثریت این شاهان از خدا اطاعت نخواهند کرد به هر حال این بدان معنا نیست که خدا نمی توانست در این دوره از تاریخ قوم یهود کار کنه وقتی که اونها عملا مغلوب شدند و به عنوان برده به اصارت رفتند خدا حتی از طریق اشخاص بد هم کار کرد خدا از طریق نبوخذنصر کار کرد خدا از طریق کوروش کبیر کار کرد خدا از طریق این رهبران مشرک کار کرد. کتاب استر آخرین کتاب تاریخی هست. اون به ما درباره باره واقعی تاریخی میگه که در اون پارس مرکزی جاییه که خدا با اقتدار کار کرده. خدا از طریق امپراتور مشک پارس مرکزی کار کرد. خدا از طریق زنی شجاع به نام استر کار کرد. وقتی خدا اون کار رو کرد قوم خدا در پارس مرکزی زندگی میکردن. البته اینها یهودیانی بودند که تصمیم گرفته بودند به اسرائیل برنگردند. این خلاصه درس تاریخ قوم یهود بود. تاریخ قوم یهود همونطوری که گفتیم میتونه موضوع خیلی مشکلی باشه. ما فقط هفت واقعیت رو از تاریخ قوم یهود بررسی کردیم که فکر میکنم اگر کتاب کتابهای تاریخ و نبوتی رو بخونید و درک کنید به اونها نیاز خواهید داشت. این هفت واقعیت تاریخی عبارتند از پادشاهی شاول، پادشاهی داوود، اصارت پادشاهی شمال در آشور، انهدام پادشاهی شمال، به اسارت رفتن پادشاهی جنوب در بابل، فتح بابل توسط پارسی ها و بعد بازگشت از اسارت بابل. من میدونم دونم که این تا حدی علمی هست و میدونم دونم که تاریخی آشکار هست. اما باور کنید اگر شما بخواهید این کتاب تاریخی و نبوتی رو با کمی آگاهی بخونید. اینها حقایق تاریخی هستند که باید درک کنید در غیر این صورت نخواهید فهمید که انبیا در مورد چی صحبت می کنند وقتی که به انبیا می رسیم چون اونها در زمینه این حقایق تاریخی زندگی و می کردند شما این کتابهای تاریخی رو هم نخواهید فهمید مگر اینکه حداقل دیدگاهی از تاریخ قوم یهود داشته باشید هرچند من نمیخوام این دوره دوره‌ای آکادمیک بشه بلکه اساسا میخوام که کاربردی باشه من باز هم توصیه میکنم که با این هفت حقیقت تاریخ قوم یهود آشنا بشید چون که او حتی بیشتر از آنچه که امروز یاد گرفتید به ما خواهد آمد اول قرنتیان باب ده آیه 11 ما رو راهنمایی میکنه که همه این بقایایی که اتفاق افتاده برای ما در کلام خدا نوشته شده تا برای ما سرمشق یا عبرتی باشه امیدوارم که ترتیب بدین که در طی مطالعه کتاب‌های تاریخی کتاب مقدس با ما همراه باشین که درسهای عملی کاربردی برای من و شما هست تا برنامه بعدی قدرت خداوند شما رو تشویق کنه و شما رو در دانش و فیض رشد بده و استوار نگه داره